up up up up فارسی بسم الله الرحمن الرحیم گیگر خوشویست کن سلامتن لی بیو ام که تو همو ساعتکی جیانتن خوشو کمران بیت لبرنامه وانه فرسی ده پیگ دگی اگر لگل برنامه کن ایمه حتی به نپیش دتوانن و تو ویجی سا کرد کسانی فرس انجام بدن اوه مای خوشخالی ایمه یا رامینو محمدتن خول بیر ماوا اوان خندکاری زنکوی تارانن و لبشی نوخویی خنکاران پیکول جودک داده جین. رامین و محمد استاد لاهود کهانن. رامین چند با محمد نشان داد. محمد سرکی وینا کند کاتو لبایی بنمالمی محمد لقل او آدیه. بوی کبتر لقل بنمالمی رامین آشن باشتر وای با وشان وی کند پشین این آقا ام پیاوه کیست کیست کیه پدرم پدرم باوکم جوان جوان گنج هم هم هم مادرم مادرم دایکم. پسر پسر کور این پسر این پسر ام کورا برادر برادر برا خواهر خواهر خوشک برادرم برادرم برادرم برکم خواهرم خواهرم خوشککم دختر دختر کچ چند تا چند تا چند تو تو تو dori dori hata ek ek ek do do do man man man daram darama hama خانواده خانواده بنمالا بزرگ بزرگ گورا پسر بزرگ خانواده، پسر بزرگ خانواده کوراگوره مالا تو هستی تو؟ हस्ती, तो है, तो है, मन, मन नहीं सम, मन नहीं सम, मन नहीं, बारो فقط فقط تنیا من ندارم من نیمه می دانم می دانم دزانم که که که چه کاره چرا. او چه کار است او چه کار است او چکاریه؟ کارمند، کارمند، فرمانبری، بانک، بانک، بانک، کارمند کارمند فرمانبر بانک بانک بانک کارمند بانک کارمنده بانک فرمانبری بانک خواهر بزرگم خواهر بزرگم خوشک گورکم پرستار پرستار پرستار خواهر کوچکم خواهر کوچکم خوشک کوچکم هنوز، هنوز. هشتا. او میرود. او میرود. او دروا. او دروا. به مدرسه. به مدرسه. بو کتابخانه. خواهرت چطور؟ خواهرت چطور؟ خوشگلت چی؟ برکن بردوامین ل سر برنامه وان ای فرسی است باوردی یوب و متوجژی رامین راگرن محمد سیرکیون کندندات و رامین را دپرسه این آقا کیست؟ این آقا کیست؟ پدرم است. ایشان پدرم است او پدرت جوان است او پدرت جوان است بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است این پسر کیست؟ این پسر کیست؟ این پسر برادرم است. این پسر برادرم است. این دختر خواهرت است این دختر خواهرت است؟ بله این دختر خواهرم است بله. این دختر خواهرم است. شما چند تا خواهر رو برادید. شما چند تا خواهر براادید. من یک برادر و دو خواهر دارم. من یک برادر و دو خواهر دارم. تو پسر بزرگ خانواده ای تو... پسر بزرگ خانواده ای؟ نه. من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. نه. من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. من برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم. من برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم. بله می دانم که تو یک خواهر داری. بله می دانم که تو یک خواهر داری. برادر تو چه کار است؟ برادر تو چه کار است؟ برادرم کارمند است. کارمند بانک. برادرم کارمند است. کارمند بانک. خواهرت چطور؟ خواهرت چطور؟ خواهر بزرگم پرستار است. و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می روید. خواهر بزرگم پرستار است. و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می روید. یکر برازکن ام و تو و جکا به کردی دویسن. این آقا کیست؟ ام پیاوه کیا؟ ایشان پدرم است اوه باوکم اوه پدرت جوان است ای باکت گنجا. بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است بله باوکم گنجه اوجنش دیکم این پسر کیست امکراکه این پسر برادرم است امکرابرامه این دختر خواهرت است؟ امکچه خوشکتا؟ بله این دختر خواهرم است بله امکچه خوشکمم شما چند تا خوهر و برادرید؟ ایوه چند خوشکو من یک برادر و دو خواهر دارم من برای که دو خوشکم هیا تو پسر بزرگ خانواده ای؟ تو کرگوری مالی؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است نه من کوری گوری مال نیم براکم کوری گوری مالا. من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم من برام نیم من بس خوشکم های بله میدانم که تو یک خواهر داری بله در دا زنم تو خوشکت های برادر تو چکاره است برکت چکاره برادرم کارمند است کارمند بانک برکم فرمانبره فرمانبری بانک خواهرت چطور خوشگکَت چی خواهر بزرگَم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه میرود خوشک گورکم پرستارو خوشک چکولکم هشتاد دچبو کتابخانه یک بار از ذکر بامتشنگایش تینه کوتاهی برنامه امجرشمان خودتان لگال هر بچین و خوشی و شادی وا.